چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود براشتی طلبم با سر عتاب رود چو ماه نوره بیچارگان نزار زنت به گوشه ابرو و در نقاب رود شب شراب خرابم کند به بیداری و اگر به روز شکایت کنم به خواب رود طریق عیش پر و فتنه است به بیفتدان که در این راه باشه تاب روید گدائی در جانان به سلطنت نفروش کسی ز ساگه این در به آفتاب روید سواد نامه موی سیاه چون تی شد ویاز کم نشود صد انتخاب رود. خباب را چفتت باد نخوتن در سر کلاه داریشند در سر شراب رود هجاب راه توی حافظ از میان برخی خوش کسی که در این راه بی هجاب رود